فطول و ناحق بودن فلسفه لیبرالیزم که مکتب اصالت فرد هست هم از این مبدل من که این فلسفه بد است این فلسفه محال است دروغ است ناممکن است یعنی هیچکس نمیتونه اگر حتی اگر تمام امکانات آرمانی خوشبختی رو برای خودش فرام کرده باشه نمیتونه در اون شرایط خوشبخت کننده احساس خوشبختی داشته باشه و آب خوش از گلوش بره و خوابی راحتی داشته باشه. تا زمانی که حتی یک نفر خواب راحت بر روی زمین نداره، ما بقیه میلیارد نفر دیگه هم ها نمیتون خواب راحت داشته باشن. این ننگ باید باشد این هست. این یک بیان دیگر از نفس واحده، بودن بشره همون که در کتابش این فرمود که انسان ها هم از نفس واحدن. در جای دیگه میفرماد که کل عالم هستی از نفس است کل کائنات از نفس واحده است حالا از این دیدگاه بتر بهتر معلوم میشه امام یعنی چی امام با مفهوم خود به آدم امکان یعنی چی اینکه اگر امامان بر روزی نباشند بشر تو مالش مدتها پیش از این جمع شده بود یعنی چی نه تنها اگر امام و امامان نباشند بشر مالش هم شده بود بلکه کائنات چرخ و فلگ جام جمع شده بود درست به همین دلیل اون که کل کائنات متوسل و متمکن و متحسن هست در وجود امام امام رو باث در دستگاه امامت درک کنیم در سلسله مراتب امامت امامت یک دستگاهست یک مخلوطی است که در رحثش امام مطلق قرار داره ها ما مابقی اولیایش ها در سلسله مراتب تا کف این مخلوط این دستگاه امامان رو تشکیل اسم... میدن که اراده اون امام مطلق از طریق این امامان جاری میشه در خون بشریت امام هم که امام صادق بفرماد مثل قلب بشریته دقیق نیست یکی از اسماء و صفات امام نقطه است یعنی اون نقطه ازلیه که الهی از اونجا آغاز شده به خلقت و تکفی یافته اون نقطه ازلی است امام که حالا در وجود یک انسانی آشکار شده اون نقطه خود خداوند است همونطور که ما در حدیثی داریم که کسی از رسول اکرم میپرسه که ای hey, پیانبر خدای تو قبل از که آدم استی رو خلق خونه کجا بود ایشو میفرماد در اما بود اما با این اون خودش یه بحث مفصلی که من در دیگر کتاب هم بحث کردم که اما یعنی چی؟ اما یعنی همون ذات مطلق همون بوده نبود همون وجود اهدیت امام ظهور آن وجود اهدیت است. امام مسحل ذات خداست. همونطور همینطور که مابقی طبیعت و موجودات و کائنات هم مسحل صفات خدا هستند امام مسحل ذات خداست. امام در واقع باز گفت انسان نیست بی صفت انسانیست محض ناپ. برای همینه که امام از رازی دنیوی مصفل فقر و فاقه و استضعاف مطلقه چرا برای کی بیستفته اصلا چون از وجود خودش صفت زدایی کرده امام شده به توحید وجود و وقتتی وجود رسیده به ذات رسیده صفت زدایی یعنی جهان زدایی، یعنی دنیا زدایی؟ یعنی شرک زدائی همونطوری که قدیمی فرمود که پرستش خدا از طرق استفادش همون شرکی انسان مباهد یعنی انسانی که استفاد پاک شده امام کسی که استفاد پاک شده یعنی احد است و سمد شده بلا همینه که از پیانبار می که سوره توحید یا اخلاص رو برای ما تفصیل کنی یعنی چی ما نیفهمی قرح و الله و احد و الله و سمد و لمید و لمید و لمید و علی رو نگاه کنید میخوامید ببینید یعنی علی جمال و مذهل توحیده یعنی آه؟ علی اهل است سمد است لم و است، و لم یادت است. و یه است این سلسله مراتب امامته و ببینید بر بستر نفس واحد بود نفس واحده درست به همین دقیقیلی گفته میشه اگر نباشن اولیا و امامان بر روی زمین بشر امبلش ختم میشد و جای میشد است. ولی همین یکی از آسمان امام بقیت الله است. یعنی بقای خدا بر روی زمین دیگه، بقیه الله یعنی بقای خدا؟ امام نه تنها الله بلکه بقیت انسان هم است. یعنی بقای انسان راز بقای انسان در جهانه، بلکه بقیت الله هست است، بقیه الله وجودم است. یعنی آدم موجود موجود به وجود امام خب حالا از این دیدگاه که باز بهتر میفهمیم که امام در جهان داره چه میکنه و امام قایب کیه و چیه امام هم همطور که خدا قایبه ولی اولین بار انسانی همسون خدا قایب شده هست و نیست نیست ولی هست این صفت ویژه ویژه خدا خدا بود دیگه ما در گفتیم خدا از لازه بیان فلسفی مسئل بوده نبوده مسئل هستی نیستیه این صفت رو برای اولین بار در عرصه خطف نووت و آغاز امامت موجود به نام امام هم این صفت خداوند رو گرفت چرا برای امام خلیفه خداست خوب جانشین اوست درست به همین دلیلی که ما تا قرآن میخونیم اگر کسی به دین خدا زنده شود کل بشریت زنده شده است ببین؟ اینا مثال نیست شعرهای عاشقان و شاعرانی نیست اینا واقعیت. واقعیته همونطور که اگر یکی کافر شود گوییم که کل بشریت کافر شده است یعنی کفر این به کل بشریت سرایت میکند همونطور که ایمان یکی ای و نور ایمان یکی ای همون به کل بشریت سرایت میکند به خب عنوان ایمان کمال همه اصمای الهی و ظهور زهور زاد بتر میشه و همید چرا بقیت الله است چرا بقیت انسانه چرا راز بقای انسان در جانه، وجود او نورش در همه انسان ها حضور داره وگرنه انسانها اصلا همه خودکشی میگردن هم جای دارم میکنن اینا دیگه کافرترین هم دیگه اینا دیگه کافرترین هرچند که اون کسی امیزاز خودکشی میکنه اونم به امید خداست که خودکوشی میکنه این یعنی ازی الله از خیلی داری که خودکوشی نمیکنن چنبه اصلا مهمندرن امید دارن به بعد از مرک که خودکشی میکنن اگر کسی به خدا امید نواشته باشه نمیده خودکوش کنند اونم بایده دیگری دیگریست که باستش اینجا نیست خب اگه کنید گفتیم اسلام و تشاییو درکن داره عدل و امامت عدل ایجیدی همه مخاطب هست از جمله تشیع پس آنجا که مذهب تشاییو رو تبدیل مذهب جهانی میکنه امامت خب عدل ما در نوشتان بحث کردیم که خود عدل حاصل مقام خلافت اللهی انسان در جهانه چرا عدل رو خود علی حریف کرده به عنوان سلطان عادلان جهان می فرمود عادل قرارداد یعنی اینکه چیزی رو بر جای خودش قرار دادن خب پس انسان عادل چه انسانی است انسانی است که بر جای خودش قرار گرفته خب جای انسان جای خداست بعد انسان عادل کسی است که بر جای خدا قرار گرفته چرابراین که انسان به خودی خودش وجود نداره که در اونجا قرار بگیره انسان ادنی انسان منای خدا به خودی جای خودش قرار بگیره یعنی نبوده. برای نه فقط انسان مؤمن و مخلصی که میتونه سر جای خودش قرار بگیره و خودش بشه و عادل بشه یعنی که به خدا ایمان داره بنابراین پس مقام ادازت هم مقام خلافت اللهی انسانه انسان وقتی بر جای خدا قرار گرفت و خدا بر جای انسان قرار گرفت این تنازی وجود وجود ها و ادالت برقرار شده ادالت بین وجود عدم قدم انسان وجود خداست ها اینا بر جای هم دیگر قرار قرار این میشه عدالت و عدل پس خود عدالت خودش ظرف و بیان قلمرو و بستر عرصۀ ظهور امامته امام یعنی خلیفه خدا دیگه عدالت هم یعنی رسیدن به مقام خلافت پس ادالت این عدالت عین امامت امامت عین عدالت خو شما نگاه کنید ببینی حتی کافرترین و بیاعتقادترین آدما غیر شیعیان م در سراسر جان نگاه کنید در را، بدبختی ها، بمبعث ها، رسوایی ها، جایی ها، که ها تا یه احصا، کمه، اینجا چه اصلا ایمای داشته باشن، به خودش نداشته باشن همه نشستن که آقا یکی بیاد نجات بده، یکی بیاد نجات بده من این اصلا ورده زبان هفت میلیارد بشار بر روی زمینه ها؟ همه از خود و از جامعه و از رهبران و دولتمردان و از اقتصاد و سیاست و از همه چیه معیوزن از امیدشون به اینه که یکی به نجات بده اینه منظر پس امامت و نجات هم امریز فطری از ذات انسان برخواسته اینا که معتقد به ظهور نیستن که همین 7 ملیار درسته؟ ولی رسیدن به این ظهور این بیان دیگری از این هم که امامهد خطری است چرا این همه دجال زیاد شده؟ فکر فقط تو جامعه ما چون جامعه امام زمانیه این همه داره مدعویت میکنند در اولفا امریکا هندوستان بدتره اینقدر اونجا دجال زیاده که در ایران ایرانستان خیلی کم ادازه و چقدر رونق دارن اینه و چقدر مردم رو هم میشن این خودش بیان حقیقتیه و اون حقیقت نگه آقا همه دونبال امام و ناجی میگردن که یک سری شالاتان و شایعات ها دارن مردم رو سرکیز و ایمان و دین و جیب و عقل و همیشون رو دارن قرارت میکنن خود این نشانه مصبتیه اتفاقا واقعا یک مفهومش اینه که آقا کل بشریت ذاتم داره شیعه میشه و به امام متقل میشه آره دیگه ببین کل بشریت میشه بدون اینکه بفهمه، بدون اینکه اصلا امامیه چی بدون اینکه بفهم چی به وجود امام زمان میشه ولی بشریت بله، از این وضعیت شیادان هم استفاده خودشون میکنند آنها هم کنند چرا؟ خود این شیادان در خدمت ظهور حقیقت امام هستند چرا؟ برای اینکه تمام باورهای جعلی و خرافی در مورد ناجی، نجات و امام, امام زمان رو این درجالان میان، ثابت میکنند که اینا پوچ. برای اگه به بالاخره رسوا میشه با بخش دیگه تو هم خیلی رسوا میشه پس خود زهور دجاله هم بر حق و در خدمت زهور مام زمانه و مردم رو بیدار میکنه تا دست از باورهای خرافیشون بردارن و به این حقیقت عارفانه و خیلیت نگاه کنن زهور و جادو تده اسم و جنگیری و ورز و فوت و کرامات و این حرف ها نبینند. ها؟ و دجال اون این باورها رو پوچ میکنن پس بعد اینا ممور خدان، هم همه اینا مزدورای شیطانن و شیطان مأمور خداست. خود خداوند میفرمه در کتابش که تمام کسایی که تکسیب میکنن حقایق رو کذابان شیطان به امر خدا میره به نزدشان تا رسواشون کنه. فقط دجالا نیستن رسوا میشن بلکه دیگه پیروانشون اسباتر میشد و اونا چوب باورهای کزایی خودشون میخورن. برا به میزانی که معارب حقیقی امامیه رو و دین ایمان رو قبول ندارن مصطب خرافه شدن به دام این دجالان میفتن اما بعد این طریق خدا نها رو میکنه چیشون رصفا میکنه؟ این باورهای دروغشون رو رصفا میکنه که دست بگیشن ازش پس همه اینا حق درسته و باید که باشه همطور که هست و این چیزا نمیتونه جلوه شده بگه خدا این در جالیت نشانه اینه که آخر زمانی ولی عاقل کسی است که دل به اون روز ظهور آخرالزمانی من خوش نباشد نکنه ها و پیشا پیش دنبال امامش باشه امامی که در حد خودش بتونه اون رو یاری کنه نور مطلقه مهدی موعود الان در حضور منم باشه مگه من میتونم از این نور بهره بشم دستم کوتاه و خرما بر نخیل زرخیذش ندارم فهمشو ندارم ببین این سلسله مراتب امامت این حدیثم از امام هاست که توسط عرفای ما بسیار نَخروده که ما زمان هر آن بر روی زمین 300 اندی اولیا داره که اینها هستند که اراده الهی او رحمت و نعمت و هدایتش رو در میان مردمان و در میان طالبین منتقل منتظر این ثغرا در قرآن داریم که آنهایی که ما آوردن استقامت کردند و صف می‌شکندن خداوند بر آنها منن من نهاد و از نزد خودش برایشون امام و شاهدی فرستاد تا هدایت بشه بر. که هدایت لازم مربوط به امام میشه انسان بدون امام هدایت نداره حد اکثر که جون بکنه بتونه یه ای ذره ایمان خالصیش کنه باور نشه که اگر واقعا دنبال اون باشم اون هم زمانه ازش میدوزه زمان ایمان آخر الزمان قاناتگری دل و دین و ایمان آدمه شما انسان هر چقدر تا واسه رو به امام برسونه به یکی از این اولیای ای اون برسونه که اونها متصلن به امام زمان و اینها هستن هر کس اهلش باشه هر کسی طالب باشه مطلوب به مطلوبش میرسه خود خدا, خدا وعده داده که که واقعا در جستی حیات باشن خود خدا امامش رو یکی از اولیای امام زمان رو میفرسته یکی از نقابش رو میفرسته تا دست اون طرف رو بگیره <تصفح> امام زمان اماماست مفهوم دائمی باز اینجور جستجو کرد. اون ظهور نهایی مشکل از منو شما حل نمیکنه اون میاد اصلا کل تکریب زمین و بشریت و تاریخ رو یه سره کنه خب بنابراین همونطور که اولم گفتیم که محمد دو رو داره محمد به قلم روی شناخت خدا معرفی خدا علفات حق یکی اون هست که خود خدا را دیدار کرده یعنی قیامت کبرا را برپا کرده برا همین دین محمد دین آخر زمانه و ما در قیامت پنداززار ساله هستیم قیامتی که یک روزه ولی اگه سال طول که چواهی باشد و یکی هم کسی که خدا را از طریق امام میشنسته اینو باستی ما بدانیم تفکر. یعنی یکی کسی که خودش از طریق موجود خودش به خدا رسیده به اون میگن امام و یکی هم کسی که از طریق چنین کسی خدا رو میشناسه و خدا رو در چنین کسی دیدار میکنه به میگن شیعه این امام ببینید به میگن شیعه این امام این دو روی مکتب امامیه است که به نظر من بهتره اصلا مکتب شیعه رو بگیم امامیه به نظر من اسم بر حقش امامیه است که همین فرقای شیعه هم در بر میگیره اصلا اهل هم در بر میگیره به که سنت هم اعتقاد داره به وجود امام امامت امام قائب اعتقاد داره خب اولین کسی که خدا را خود دیدار کرد یعنی به قیامت کبرا رسید و قیامت خودش رو برپا کرد که بود محمد بود پس او امام اول و امام مطلق و کاملترین امامه بله امامت رو عیسی داشت غوسی داشت و قبل از همی انا ابراهیمان بش بود همطور که در قرآن خانم. ولی به مثل ابراهیم تا مبدأ کجا آسمان رسید و گویا به آسمان چارم رسید نه بیشتر ولی محمد به آسمان هفتم رسید و خدا را از نزدیک ترین حد دیدار کرد و علی اولین کسی بود که در این امام مطلق خدا رو دیدار کرد و خیلی جالبه و آن این که محمد خود در ست اصل منطقه خداوند رو در جوانمردی علی دیدار دیدار کرد تبقیه احادیث مراج برای همینه که خداوند میگه که محمد تو رو به این دلیل آوردم به مراج که علی رو تو معرفی کنم علی رو در خودم یوا اخون من علی هستم حالا برو بین علی کیه. تو روز به همین دلیل هستش که این سخن رو پیانبر که علی من هرچه بودم تو بودی هرچی من دیدم تو دیدی جا من شنیدم تو شنیدی و منو تو نوره باهی این مفقاقت در میراد میشه فهمید که هرچی من دیدم تو دیدی خب به هم که محمد خاتم نبوت میشه و نیز خود اولی نمال میشه ببینید ما در که نوشتمون قضیه رو کاملا نشون دادیم از لازه عقلی و علمی و حتی فلسفی در چایی این رو به منظوم آوردیم که هر که خدا دید خودش خدا شد یعنی مسحر خدا شد معده تجلی خدا شد ببینیم خدا شد رو نگیب اون فرد خدا شد نه. مخلوق خدا نمیشه ولی مخلوق مخلوقه ولی مخلوق میشه به مقام برزه که در رزه خدا از خود خدا عزیزتر باشه ه بنابراین این اینکه من بگم من خدا هستم من لازم معرفت دینی و شیدی اینه من اصلا خودم رو تقلیل کردم چون خدا میده من تو رو از خودم بر خودم ترجیح دادم بله بله انسان و انسان حقیقی اون که به مقام آدمیه رسیده در غزه خدا از خدا عزیز و خدا موریده اوست بله دیگه موریده اوست انسان خلیفه خداست این چه این مسئله اقراده خداست ببینید نگی مقا این حادیث نمتون مشکوک است خود قرآن که مشکوک نیست شرایطی صفاتی مقاماتی خدا بند برای عباد الله المخلصین در قرآن قادر شده که در چندین دین آیه هست دقیقا هم مقام امامته این هم راده خدا هستن دست خدا، چشم خدا خشم خدا، حب خدا ببین ببین خدا مرید من دیگه همونطور که اونا ذات خدا حل و فلا شدن خدا از اونا آشکار میشه بلا همینه بینامی این الله اینالله، یدالله، اصدالله، نورالله، حقالله همین چیست پس هر خدا دید خودش خدا شد و امام شد همونطور که امام یکی از اسما خداست و هر کم که چنین کسی را دید کسی امام دید خودش امام شد برای همین تمام اولیای اون امام مطلق بر روی زمین که سی ست هستند هستند بروایتی همه امام دیدن و لذا امامان. این برای خلایق امامن اون امام قایبه امام سامته امام خاموشه اینا امامانه قریان عیان و ناتقن همینطور که علمان صادق داریم که در هر عصر زمانی یک امام قایب داریم که همون امام قایب معروفه ها و هزاران تمام ناطق داریم در تاریخ که زبان آن امام ثامت هستند اینها هستند که اگه نبودن بشر تو جم میشد خداوند حجت خودشو بواسطه اینها هستش که بر بشر تمام کرده نه بهواسطه آن امام قایب تو مام قایبو که همه براش دسترسی ندارن که در واقع امام قایب در صدها تجلی بر روی زمین همیشه حزور داره در هر قوم حضور داره در همه مظاحب وجود داره شیه بودن که به اسم نیست به رسم در شیعان پللی شیه کسی که پیرو امامان باشه پیرو چی امامان باشه پیرو زندگی و آداب و راه و روش امامان باشه هر هرکس پیرو سنت امامان بود پیرو اطراط آنها بود او است چه به اسم شییه چه به اسم بودایی چه به اسم مسیحی هیچ فرق نمیکنه چه به اسم دائویی هیچ فرق نمیکنه چه به اسم یهودی پس از این در مسیر آنها را میره و زندگی میکنه او شیه است نکسی که بابا شیه بوده اونم اسمش و گذاشتن اسمش گذاشتن علی پس شیعه است حسین گذاشتن پس شیعه است ی ربتی ندارد همونطور که یک هدیث از امام رضا علیه السلام که ایشون در مورد اهل بیت اسمت و سهارت سوال میکنن اهل بیت محمد سوال میکنن خیلی واضح این بس و حدیث یادم نیست به این مضمونه که هر کسی که در راه ماست اهل بیت ماست و آل محمد حساب میشه و مشمول سلوات محمدی حساب میشه یعنی بر محمد و آل او وارد شده صلو سل شده سلو شده نیم شده هدایت یعنی این این سؤال خیلی هم میکنند میگن اگر تشیر تنها مذهب هدایت آخر زمانه اونهایی که نمیدنن شیعه چیه چطوره؟ نا اینطور نیست. شیعه سنت آداب عمل معرفت مگه اسم و مگه اتفاقا درست برعکس هست همونطور که ما در روایت داریم که در ظهور نهایی امام زمان اولین گروهی که شقیترین افرادی بشادی هستن در مقابل امامت نیستن گروهی از سادات آل محمدن ببین؟ که نجات پرستی خودشون رو حمل بر مصمونی و شیعه‌گری خودشون ثابت گردن چون سیدن چون سیده حسینیه چون سیده رضویان، چون سیدن مصادیه سید اینها نیست منوکه و اولین گروه که ما زمان رو میزنه اینها هستن هم ای که هم باعث مشتبه شده به خاطر اینکه از نژاد و شجرهی خاشمی و قریشی و عرایی بودن پس معلومه که اینها ها و اینقدر به خود مغرور میشن که خود وجود ما زمان قبول ندارن به این برد مناک این نیست اصلا چنین نیست ادالت اساس تشیعه هر که در مسیر ادالت گام برمیداره در هر حدی در حد توانیش به همون میزانی که ادالت رو فهم کرده این شی است. همونطور که طالقانی بر روی این حرف چقدر تأکید میکرد که برپا کنندگان قص و عدالت همردیف انبیاء الهی هستن. هم همردیف انبیاء الهی هستن طبقه نسل قرآن پس هر انسانی که در مسیر عدالت تلاش میکنه و جهاد میکنه که البته اصل عدالت اینه که انسان با ظلم نفس خودش تیزه کنه و محیط خودش را بعد در جامعه تو. از خطه جهاد او شیع است هر که با تاقود و ستم جهاد میکنه او است چه مصطعی پدریش سننی باشه چه بودایی باشه چه مسیحی باشه چه گبر باشه هیچ فرقی نمیکنه کنه اونان بایستی بفهم ادالت امامت از عدل برخواسته شیعه بودن ادالت داشتن و در مسیر ادازت بوزنه ادازت رو مبونه که تعریف کردیم البته بر برون است بنابراین با از کف خط نوبت یعنی به پایان رسیدن نبوت بیرونی به پایان رسیدن وحی جبرائیلی به پایان رسیدن ارتباط برقرار کردن با خدا از بیرون و با واسطه به واسطه ملائک جبرائیل این خاصه. شد ولی مرودی صری باید عمر حالا انسان هر انسان مؤمنی میتونه با خدا ما اثبات برقرار کنه از طریق درونی به این میگن وحی درونی من اسمش میذارم وحی درونی نبوود درونی نبوود باطنی خود ما عمانی نمیگه میگه زین پس این در دوره اصلی ختم نواد فقط اهل باطن علی مرودی نفس با عقاید اینا من میرسن ببین با عقاید اینا من میرسن عقاید من با چی با همه همه عقاید من با و پس رحمت خدا تبدیل به سراتن مستقیم شده سراتن مستقیم یعنی کتا تایی را یعنی رابطه بین و مخلوق کتای کوتاه کوتاه شده از فاصله بین خود تا خود از فاصله بین خود و خودم فاصله نیست صفر. هر بر خود وارد میشه در واقع بر امامت وارد میشه و این شیعه یعنی این این شیعه گریش شروع میشه برای همینه همه عارفان جهان از هفته و دوم زحمت ها و آرف مشیه همو حرف میزنه که آرف شیه میزنه آرف شیه همو حرف میزنه که آرف سونی میزنه آرف هم همه حرف میزنه که آرف بودایی میزنه و هم حرف میزنن میزنه که آرف یهودی میزنه ببین؟ همه به حقیقت محمدی میرسن همه به حق میرسن این به معنا های دیگری از خط منقوبت قرض شدن نه به وحی درونی. بردید ورسیدن به وجودی، درونی به این مقام حدیث هم میگن هم وج برا همین همه امامان ما اهل بودن. بودن برا به نام گفتن غرآن ناطق ما فکر نمیکنیم این مقام اونا است هر مؤمنی به این مقام میتونه برسه امامد یعنی همین هر مؤمن یه هر ن مومن... انسان معرفتی بایست به مقام امامان برسه امامان عصفهی هدایتن عصفه ینی چی یعنی مدلی که باعسی به اونا برسی مثل اونا بایستی بشی همونطور که علی میگه میگه من تبعیت کنید تا به مقام من برسید همون که سلمان رسید ببین؟ این سلمان به مقام امامت رسید ببین امامت یعنی این اصلش نه اینکه یک امامی هست در پردقی بطیق من نجات بده این یکی از ارکان و اصول و باورهای یک شیع است این اصلا بس یکی از فروع مذهب شیع گذاشت اصل امامت رسیدن به امامت وجودی در خوده انسان به میزانی که به آمدی وجود در خودش میرسه ها قام بنده داره به امام زمان در بیرون نزدیک میشه با, با امام دیدار خواهد کرد همونطور که تمام انسان‌های اهل باطن اهل تقوا اهل جهاد اکبر اهل عرفان به دردی که با امام زمان دیدار داشتن من درسته معنی که با او دیدار کرد خود امام زمان خودش در جامعه و در روابط اجتماعی خودش درد این الیمامت برای که نور انسان کسب میکنه چرا ما بر جمال محمد سلوات میفرستیم استان تنها نیه که بر پیامبر پیانبر سلوات میفرستن خیلی حرفه عزیزی برد کنم مصحب جمعات پرستی است این همون مصحب عشق و اسمش بزای بود پرستی این شبیه بود بود است اون داره این بود کجا بود, بود کجا. چرا؟ سلوات بر جمال مهنه بود برای که او جمعه خدا را دیدار کرده و از او جمعه رو گرفته همون صبتی که گفتم هر که خدا دید خودش خدا شد مهنه تجلی خدا شد هر که اصمی که امام را دید خودش امام شد برای که نور رو گرفته این جمال در دل و در ذات او نقش میبنده و این نور بر ذاتش میره و از متجلی میشه و او یکی از اولیای هدایت در جامعه میشه این شکلی که هدایت نامه داره اگه صحبت فقط منوط به اون امامی که قرار در کجا ناآباد قرار ظهور کنه که اصلا حساب بشریت پاک بود خداوند عادلتر از اینه که بشریت رو به واسطه امام غایب ها معاخظه کنه اگر ما این نفهمیم تمام دریای از احادیث شیعه رو نمیتونیم بفهمیم و منکره ایمشی نمیتونیم منکره شدیم به امام است. یعنی این هی... به نه اینکه باقره به یک کسی که امامی از قواره زور کنه از نه کی از این باوری نراشته باشه در تمام مذاهب یک موجودی وجود داره پس همه پس امام دارن پس همه مؤمنن پس همه رسته کارن نه چیزی نیست همین چیزی نیست در دین زرتشت کسی داریم به نام سوشیانس که قرار موعودی باشه که نژاد بخش بشریته در همه موضوعات مدرن به اسم مختلف در بوداییزم داریم سه 3 میلیارد بودایی منتظر ظهور بازگشت مجادله بودا هستن بودا عادی موجود اوناست ناجی اوناست خب خب با سلسله با همینا روندان دیگه شما پس مؤمنان رسخور شده ها ها خیلی رسان شده این به یک معناست که همه اللهی اعتقادی و ذهنی به حقانیت شیعه رسیدن و اللهی ذهنی و باور دینی کل بشریت بر آستانه شیعه شدن و نفسا و معرفتا شیعه شده در واقع به مسائل امامیه رسیده ولی این کافی نیست لازمه ولی کافی نیست باسی یکی از امامان رو با سیافت فردا نمی کنه. هر یک از اولیایی که با ما زمان دیدار کردن موری از هدایت هدایتگو هستند و میتونن هر تالبی رو هر مؤمنی رو نجات بدن و هدایت کنند. نجات یعنی این این یعنی نجات خب ببینید اصولا نجات یعنی چی؟ یک کمی در مورد نجات رو ما پسویم بحث تفهیم کنیم تقریبا در اکثر قلیب اتفاق همه ما ها نجات واقعی فیزیکی. برای همینم نجات آخرالزمانی زمانی و که تماما یکی فیزیکی فیزیکیه که درست هم است در رقای ها اون نجات قهارانه بشریتی اون هجامت از نفس بشری تمام خون خوندیتییه اون اگر اسمیجو نجاتم بذارید توفیق اجباری است نجات زورکیست هدایت نیست چون هدایت همی است زورکی نیستش که نجات یک واقعه باطنی است در قرآن دهها آیه ما تعریف شده تا نجا که زانم یار میده وثلا نیگا کنید رستگاران چطور تحریف شدن مثلا یک آیه اینه که فلاح و رستگاری رو اینجوری تعریف میکنه خداوند آنهایی که از ظلمات خارج میشن و بر نور وارد میشن این یک تحریف یک بایه این دیگه همین آیه بوکی باید قابلن گفتیم تصانی که امام دارن نا اینا چند نوع هدایت نیست ابعاد وجوه واقعی نجاته و هدایت و رستگاری این دو تا مشهور یکی خروج از ظلمات یکی داشتن امام با امام بودن تحت ربوبیت امام بودن، این دو تا یه واقعه است امام ماصوم نور خداست است، خود امام مطلق مهدی موجود ها خود نور الله است او بر روی زمین که در عرصه حضور و ظهور هستند و امامان ناطق هستند ها آن امام مطلقن نور امام حکی نور دید اون نجاتی افتاد. است در حقیقت باید گفت برای یک مومنی که طالب امامت باید در جسوی امامت و نجاته دیدار با امام سراخاز نجات و رستگاری است چرا؟ برای این نور ظلمات رو از نفسش پاک می کنه که چی قسمش زلالت و ظلمات نفس ماست ما در اوهام و تاریکی و اشباه فریب و گرفتار اجنه و شیاطین نفس ما نفس خودمون هستیم که همه اینا حاصله ضلالده همینطور که انسان در تاریکی مطلق وقتی چشم بدوزه اشبا و قول و حیولا به نظر ودن میاد همینطور به همین دلیل انسان از تاریکی میترسه حال این تاریکی رو در درون ببری ظلمات نفس رو دیدار با امام امام نور الله است نور امام نور خورشید نیست یا نور ذاته برای همینه که اولیاء خدا همه تجلیاتی از جمال امام و و این جمال جمال نوره جمال زهر وحدانی و بردگاره این دیدار خود سراغاز خروج از ظلمات و سراقات نجاته ما اینو در سنت، در روایت در احادیث و داریم داریم واقعا در برده همون امامان سردستام داریم کسانی که در این اتشک بودن مثلا یکی از معروفترینش مس محوبیس قرنی یکی سلمان فارسی سلمان تا محمد رو دید معروفه ها، گفت خدایا تورا شر که نجات یافتم تا دید تا دید کونکه نجات خودید ما نجات یافت حقیقت این در حقیت شیطنت ابتلای به شیطان و زلالت و فریب و بدبختی و شقاوت و جعل و جنون همه اینها معلول ابتلای انسان به ظلمات نفسه پس نجات واقعی دیداره در حقیقت اگر محمد نور نجات بشریه و رحمت و برای اینکه خداوند دیدار کرده خود اولین کسی نجات نجاتی و ولذا نور نجات است. خب این بعد وقتی دا این دعا نداره نکته دیگه اضافه کنم بنابراین از مجموعی این صحبت ها که همه که همه هرانچه که اسمش رو گذاشتیم تشیع و امامیه نجات همه این کلام تدوین شده است همون چیزی تدوین شده این مکتب و این ایدئولوژی همون چیزیه که اسمش رو عرفان اسلامی و عرفان شیعه ما میذاریم اولفا یعنی آنهایی که به قول پیانبر در معرفت نفس به حقائق محمدی رسیدن اینها آرفانن اصحاب احرافن اینها امامان ناطق بر روی زمینن و نور هدایت خلقن اولفا اولفا مخروط ته امامت ته امام قایب هستن اولفا زهور امام قایب هستن یعنی امام قائب در ارفاه ظاهر میشه این ظهور ظهور رحمانی نعمانی و رستگاهی هدایت این ظهور ظهور نورانی ظهور عشق و محبته ظهور عرصه قیبت که امام زمان اینه اون هدایت امام زمان در اولیای خودش ظهور میکنه آن ظهور نهایی آخر و زمانی، که در واقع میشه گفت دیگه بستر قیامت و کبران رو برپا میکنه اون دیگه میاد که پرونده زمین جمع بشه و واقعا هم جمع میشه ما در روایتی داریم که مهدی موعود چه به روایتی هفته سال حکومت میکنه بعد به دست زنی شقیل شهید میشه و بعد ظلمت و تاریکی جهان رو و قائناز رو در بر می‌گیره و نشانه بسته شدن پرونده بشریه و کاینات بر روزمی آغاز میشه بشریه دست دست خودکشی میکنند ماه در خورشید تداخل میکنه ستارگان فرو میباشند آسمان شکافته میشه و آیاتی که در قرآن میخونیم اون دیگه پایان جهانی دیگه اون اون پایان جهانه پس ظهور به مفهوم نجات آن ظهور نیست این هنبر گوشم اگوشمو دربیاریم تا این مثئلهر ما نفهمیدیم شیعه ما شیعه ضد شیعه است اسلام ضد اسلام امامت ضد امامت مذهب ضد مذهبه و همه چیزمون مون سالار و است و لذا مذهبی که باسی خوشبختترین امت و بپروره از تو چی در ومده است چنین باور مذهبی مفلوکترین امت در اومده بیهوریتترین منافقترین مریضترین ویوانه ترین و چه بسه مفسدترین وزید شیعهان نگاه کنید ایران تازه به روی زمینه عراق نصف بیشتر شیعه ها لبنان چه حضیتی دارن اون هدایت یا فلاکته یا هلاکته که این مسئله فهم نشده این مهمترین نكته ایدولوژیکی این صحبت ما در حقیقت تدوین و تبیین ایدولوژی شیعی به زبان امروز و به زبان حال ایدولوژی عملی و واقعی که با های ما رو به ما بفهمانه برای خوشبختی رو به ما نجات بده و ظهور رحمانی و عرفانی عاشقانه نجات بخش و رستگاری بخش و حیات بخش امام زمان آن ظهور نهایی که همه مندازشن نیست ظهور امام زمان در اولیای های بر روی زمین که همه جا هستند ما اینکه نیستیم نیستیم دنبالش نیستیم چرا ما که با ما دنبال نخستی ها میگردیم اگر قرار او ظهور بدا کنه ما نجات بده پس ما چه کاره این ما هم باید کنیم ما باید فقط دعا کنیم تجاهیه یعنی مصحب دعا یعنی مصحب ارزایه یعنی باید شریعتی نه اینطور نیست و اما نکته دیگری که در شروعی مطرح کردیم به طریق کم دیگه توضیح بدیم مفهوم ایدولوژی است. ما در همین آثار ما داد زدیم که آقا جان باید است ایدولوژی شیعه طبیعی و تدوین بشه. وگرنه ما هیچی نخواهیم داشت. و در سراشیبی بازی های جهانی قرار داریم. و هر جایی که بحرانی باشه آه، ما هم با هم بران سقود میکنیم. شیعه نباید اینطور باشه. شیعه که نباید در شرایط شیطان جهانی قرار زندگی بکنه. شیعه نیستش که در بستر سازی و جهانی سازی های تاقود سریوز همپیونیزم دیگه و, هم و بازیچه بران هم اونا باشه ایدولوژی همطور گفتیم خود لغت ایدولوژی هستن که ای لغت فرنگی و ولی لغت برحق است و ندیگترین مفهوم به معرفت است. در حقیقت لغت اسلامی و شیعه ایدولوژی به زبان ساده همین عرفانه نه؟ اگه بخایم ترجمه حقیقی بکنیم ایدولوژی در فرنگ ما یعنی عرفان این تبییر شناسی و هیمونیتیک هم هست ایدولوژی یعنی ایده شناسی ایده یعنی ذهن یعنی فکر یعنی اندیشه یعنی شناخت چون شناخت انسان مجموعهٔ آراو ایدهها هستند دیگه پس ایدولوژی یعنی خودشناسی یعنی معرفت نفس ما بحث ندنشیه اینه خب بنابراین شیعی همان عرفان شیعی است پس عرفان اسلامی بستر نجات شیعی است عرفان اسلامی عرصه ظهور امام زمانه قبل از ظهور جهانی است ما تا این نوبان این هیچ نفر نیست اما امام صادق می فرماد ازشون سوال میکنند در مورد اصخاب اعراف در قرآن میگه اصخاب اعراف ما ایم. این، یعنی ما عرفانیم آنها عرفانی کاملا در بد بنابراین علف قد راشناخ امام اشتر ربش راشناخ و اگه ربش راشناخ خدا راشناخ و اما این سوالام داریم از امام علی که خداشناسی شناخت خودش شناخت و بدانید که هیچ کس به خودی خود خدا خود رو نشناخت یعنی بر... این یعنی یعنی پیمون کو است. نه یعنی کس به خودی خود خدا خود خود رو نشناختر است نشن. چرا برای یعنی میگیم یک بار دیگه صحبت امورون میکنیم ما این صحبتو در نوشتامون در خداشناسی ها داریم ما گفتیم جهان هستی عالم رو ظهور عشق باربردار و ظهور عیسی از خودگذشتگی خداست چرا؟ رو به با هم ما هستیم با خداوند نیست عرش که میگیم عرش فناست برای همین سالک که الالله رو میگن سالک وادی فنا تا بره با خدا دیدار کنه وادی فنا یعنی وادی ذات برای همین این وادی رو میگن وادی صفت است. صفت زدایی دنیا زدایی یعنی طبیع زدایی یعنی ماده زدایی ببیندگر این هستی زدایی و رفتن به سوی نیستی نه؟ آنچه که نیستی در واقع همون حضور خداست. هست عقل الیتی و جزئی ما هستی خدا را نیستی میفهمه برای همین بواسطه ذهن نمیشه خدا را شناخ واسطه ذهن الیتی نمیشه خدا را شناخ بواسطه ادراک محصول محسوس و حسی نمیشه خدا را شناخ تبا خدا مقیم بر عرش فناست عرش فنا همون مثل سخن سوخن بیانبره که خداوند در اما باست. اما یعنی ذات مطلق ذات مطلق از منظر ادراک حسی و ذهنی بشر فنا میمونه حالا انگه بقای مطلق امومست و ما اثیر فنا هستیم پس جهان هستی مصحر عشق خداست این رو که در شعار عرفانیمان دیگه همه حفظیم منطقی اینو باور نداریم اینا فقط به, ب... به درد تفسیر شعر میکنه به در زندگی ما متسفانه باید دیگر ما محصول از خود خدا هستیم خدا از خود گذشت لذا ما احساس خودیت میکنیم خدا از منش خودش لذا هر انسانی منه و لذا در این من احساس خدایی میکنه بر حق برای انسان خلیفۀ خداست روی خدا در انسان لذا انسان احساس خدایی میکنه و این درسته منتها چون بر این احساس معرفت نداره این باعس ضدازدش میشه از بیمعرفتی زلیل میشه و دوچار ظلمت و کفر میشه مگرنه این اصلاح خدایی کاملا درست هستش خب اگر چنین هست پس وجود ما حاصل از خود گذشتگی خداست و این درست به همین دلیلی که هیچکس به خودی خود نمیتونه خود رو بشناسه و به حق خود برسه و به خدای خودش برسه و این حق رو این حضور خدا رو در خودش متجلی کنه بشناسونه با عدم آدم یعنی به امامت برسه چرا؟ برای اینکه وجود انسان حاصل از خود گذشگی خداست برای رسیدن به خدا یعنی برای رسیدن به وجود مطلق که خداست باعث از خود گذشت چون انسان ذاتا خود پرسته و خود مهبره خب دوست به این دقیلی که بی رب بی امام نمیتونه انسان خودشو بشناسه و خودشو پاک کنه از ظلمت و از خود از زدائی کنه آه؟ و ساله که وادی توشت بشه نایتش اینه که انسان میگه خیلی خوب از اونجای که من فهمیدم که خود پرستم بعدش راهی ندارم حالا هرچی دلم میخواد برکتش انجام میدم این میشه ریاضت که در اسلام حرامه الهش نمیده که جز دلالت و نفاق برای یا کار هیچی در نمیاد در نمیاد ریاضت برای اینکه من اگر جدان میخواد که مثلا این چای رو بخورم کل خوب حالا میفهمم کی کار واس بکنن خب حالا خودم رو راضی میکنم کنم که چای رو بخورم بعد بعدم خود پرستی دیگه من واسه اینکه به نخوردن چای خودمو راضی کنم خب بعدم من خود پرستم منتها خود پرستی یه این خود پیچیده و خودفرید آه؟ این همون زهد ریاییه این همو روحانیت که خداوند میگه اکثرشون فاسد بودن و بیشتر زلالات بودن اکثرشون آه، پس ریاضت هم به خودی خود آه، انسان رو به سمت مناسب می‌کنه. دوست به هم بیرب بی ربی رب، امام بی مراد دی پیر نه انسان خودش می‌شناسه نه شر خودش رو داره. خود کفر همون خود پلستی. من من همون درب ابلیس منه. منیت من هبوسیهت من نفس منه. این همه او رفای ما تصدیق گذار داشت. پس نجات یعنی نجات از منیت خودم انسان عسیر و زندان من خودشه ظلمت و تاریکی اون من انسانه یک امام که نور عشق پروردگاره فقط میتونه من من رو از من بستانه یعنی این ظلمت رو از من بکیره و این ظلمت رو در من بدره تا حق من رو به من نشون بده تا من ببینم که ها؟ این من حقش وزاتش خود خداست در من این من نیستم خداست که من فکر میکنم منم این همون فاصله بین خود تا خداست از خود تا خوده از خود مجازی تا خود حقیقی است این همون سخن علی است که خداوند همان خود خود انسانه وا ببینید خود اولی خدا نیست نفسانیت ابریسیته این خود رو که دریدی آن خود دیگری که از بتن خود در میاد آن بنده و ظهور خداست این مقام امامته در سلسله مراتب این مقام امامته هیچ کس نمیتونه خودش رو از خودش بگیره یعنی خود در خودش بکشه برای همینه نفس کشی حرف شیعی و اسلامی نیست همین ریاضت کشی هندویه نفس تو بکش خود تو زرش بده برای تقیقی نفس انسان دوتار خیلی از حالات های عجیقهی و مابرات طبیعی ممکنه بشه مثل جوكیای اندی عجیب قدیب به غیبی میکنه خود همین نشون میده که این خود چه معجزهی چه فدیده عجیب این خود حتی آنها با این خود ورمیرند خودو میشکنند باداپایی میکنند زخمی میکنن از سوش چه خواص غیبی را در میاد و چه های عجیب جادویی در میاد ولی این هدایت نیست این هدایت نیست پلا همین هیچکدوم از این جوکیا نه مسای هدایتند روحن رو رو خیلی از اینها شیاط میش و خودشون شیطان صفرت های عرفه ای میشن. خیلی از این دجالا و ها از این تیبا است که یه مدتی حتی ریاضت کشی کردند ببین پس امامت یکی آن است که انسان ربش رب الله هست م؟ یکی امینه که یکی از اونهایی که ربش رب الله است انسان بره در اون سر بسفره دل بسفره و مورید بشه یعنی این خود به او بسپره و تحت ربوبیت آن کسی که خدا او رو هدایت کرده به خدا برسه این را ما تو قرآن داریم بارها گفتیم این آیه قرآن یکی از اساسی ترین آیهایی که در, در آن تشیع و امامت میاد بارها گفتیم این آیه اینه مضمونش که خداوند میگه ی خدا از شما سوالی میکنه تفکر کنید تا هدایت شوید آیا نظر شما پیروی از الله حقتر است یا پیروی از کسی که الله او را هدایت کرده اکثر ما میگیم بله معلومه که پیلویی از خود خدا خیلی بتنه که با سو کاملا محبوسه خدا ظاهرا جواب مستقیم نمیده ولی بلا این سخن دوتر میکنه. اما بدانید که اکثریت مردم آنچه که خدا میخوانند، زن آنها خیافیه اونها و هوای نفسشونه هوای نفسشون می پرستن فکر خدا رو می و اینا مشکین و شرک ظلم عظیمه و خدا همه مشرکین رو عذاب میکنه و این معصیت و به خدا یعنی خدا براستی ذهنی برا همینه ما داریم که آقا چون کسی که ما نداره نماز نداره ایلان که نمازشون رو منافق و ابن ملجم و شهر رو قطامه میکنه گلوزه نداره هج نداره هیچ چی نداره دین نداره چون کسی اگر اصلا نماز نخونه و هیچ کاری نکنه یک کافری بیریایی به این کسی که تمام نداره نه داره نه دین داره نه نو داره هیچی داره سخن معروفی از پیامبر کسی که تمام میگه شریعت ما رو از واجبات و محرمات و مکرو مستقب انجام بده ولی تط هدایت امام زنده ای نباشه ها او کافر از دنیا میره و نه کافر جاهلی بلکه کافر منافق یعنی بدترین مردم او این سخن که که نی. قبول دارن این سخن را از پیامبد بنابراین این خودشناسی شناسی این دور زمانه مخلوطی از روانشناسی و شعر و هندیوازی و کلیشنامورتیبازی و اشعو بازی و اینها این هدایت نیست این تشیع نیست این عرفان نیست این دجالیته یک ظلمتی است اندر ظلمت دیگر کسی یمام نداره یک پیر بر حق نداره ها؟ یک شیطانه اگر به خود با این چیز بازی کنه این حرفان های انگلیزی هندی که تو ایران باخت شده همه این آدت جالیت ها هستش به خوشناسی نمیستگه ایچی بلکه خودش خودفریبیه هزار تو هستش پس به عنوان به تر دیگه مطالب باید مقدار جمع کنیم تحت عنوان ایدولوژی اسلامی ایدولوژی شیعی پس در این کنان باز گفت شیعه یعنی مورید. مرید یک امام حی حاضر زنده در پوست و کشت و خون زندگی میکنه و تحتی ربوبیت او بودن و من خود و اراده نفسانی و نفس اماره خود را صادقانه به او بردن آ این شیعه نیست این پس از اول شیعه پراتیک و ایدولوژیکی و عملیست عرفان عملی شیعه حالا حاله ممکن سوال بشه که آغا جون این همه دجال ما کجا بفهمیم که او یکی از اولیای خداست ها که متصل به امام زمانه یا نیست این رو همه میدونم انسان صاحب نورورور و کافرترین و انسان ها، هم قلبشون تصدیق میکنه و این حجت الهیه میگن نهخیر من نمیشناسم خدا میدونه که تو میشناسی ها به خدا بسناوتن جواب پستاد هر کسی که نوری از امامت و ولایت درش هست رو هر احمق و کافر و ملحدی با این نگاه می که او صاحب حق و نوره جاذبه روحانی او داد میزنه در قلب انسان ها این بزرگتر حجم بله با حساب و منطق و فرمول نمیشه نمی ثابت کرد اصلا نیاد نیست. صدایت عمل قلبیه تو که فهمیدی خدا هم فهمید تو فهمیدی خیلی خوب اولین سوالی که خدا بند که درگی کنم من از نعیم میپرسند که با نعیم چهار کردید؟ نعیم این صاحبانی نعمت الهی هستند نعمت الله هستند، هستن یعنی حادی ها هستن حادی ها که چهار کردید؟ اونا رو چه, چه برخوردی کردید؟ این انتخاب امام در جه کلام او عملش چیه؟ امام کسی تو رو با خودت میشناسونه و سلام پس امام یک نشانی باطنی داره که اون اقتدار روحانی و نورانی اوست و رسوخ در قلوب رسوخ معنوی و عاشقانه مثلا محبت الهی محبت رو سنگی هم درک میکنه سنگ هم میفهمه محبت چیه و بم از هر کسی را دید میدونه که آها محبت اینجاست و قبل از این هرچی بوده دروغ بوده و شقابت بوده و ریاکاری بوده این نشانی باطنی است نشانی بیرونی شان انسان جامعه شناسه جهان شناسه و زمان شناسه و خوبت و حق و باطل و باید نبایت رو از هر بعدی درک میکنه. میکنه و تو رو به خودت و جهان رو به تو و خدا رو به تو مغرفی میکنه و تو رو به سمت خدای خودت قاید میکنه اینم یعنی اما و الصدق.